نزدیک بود بغز گلو زن ناشناس را بگیرد اما از جا برخواست ساعت ده شب بود سکینه را صدا زد و پرسید شام حاضر است سکینه گفت بعد خانم مدتی است که شام حاضر است بفرمایید آقای نزه سر شام یک کلمه هم با هم صحبت نکردیم سکینه پشت صندلی ایستاده بود و به دستور خانومش صرفهای غذا را این طرف و آن طرف می برد. فرنگیس چشمه رمزی سفید دوخته بود و بی‌اشتها ها های کوچک به دهان می‌گذاشت. معلوم بود که برای اینکه من خجالت نکشم سر سفره آمده بود. من همش به او مینگریستم. زن بدبختی برابر من نشسته بود. زنی که سعادت خود را در زندگی گم کرده بود و دیگر بیخودی خودی دنبالان میگشت. از کینهی که از شب اول در از او در دل داشتم کوچکترین اثری باقی نمانده بود. حتی یکبار به این فکر رسیدم که شاید استاد موجب ذلت کمونی او بوده است. این زن توفاله اجتماعی بود که داران نشو نمو میکرد. کرد. میکوشیدم به چشمهای اون نگاه کنم. مجه های بلندش مانه بود وقتی سرش رو بلند می کرد و من می توانستم این چشم های بادامی و حالتدار را تماشا کنم دیگر اثری از تباهی در نمی دیدم آن وقت از خود می که چرا استاد نتوانست او را آرام کند و برای یک زندگی شرافتمند برو باید قبل از آن که بقیه داستانش را نقل کند دل من بیشتر به حال او میسوخت تا به حال استاد بالاخره موجود زنده مقابل من نشسته بود آیا میشد با او کمکی کرد؟ تدریجا احساس کردم که باید دربارهاش قضاوت کنم این یک زن پاکی بود شاید همین نقطه مهم که او در مقابل من نشسته بود و اقرار به معاصی خود میکرد با کمال شجاعت جنبه های زرف خود را بیش از حد لازم تشریح میکرد آیا همین؟ دلیل صفای باطن او نبود؟ این زن نمی توانست خطاکار باشد منتها بی اراده بود و حوادث او را بازیچه خود کرده بودند مانند پرکاهی در گردباد به اوج میرفت رفت و سقوط می کرد این داشت حوادث زندگیش را بی ریا حکایت می کرد. همه زنهای دیگر هم طبقه او نظیر این حوادث بسیار در زندگی خود دارند و آنها را عادی تلقی میکنند و هیچوقت وجدانشان در عذاب نیست. اما این یکی میخواست با مرور اتفاقات نیک و بد گذشته خوری را که از زیر تارهای روح او را میجوید نابود کند تا آن فراغتی که آرزو میکرد برای یک لحظه هم شده نصیبش شود. آن وقت ناگهان به این فکر افتادم که نکند این زن هم اشتباه میکند. از کجا معلوم که استاد این زن را هوسران و دمدمی معرفی کرده من سالهاست که این پرده را میبینم و وقت قاطع این تصور به من دست نداد که خوی زشت در آن تجسم یافته بارها به خود گفته بودم که این چشمها گیراست و معلوم نیست که استاد چه فکری و یا چه نوع احساسی را بیان کرده ساعتها نشسته بودم و چشمها را تماشا کرده بودم گاهی به خود میگفتم از این چشم باید در لحظه بعد عشق جاری شود اشک تحسر اشک عجز و لابه بار دیگر تصور می کردم که این چشم زن عاشق را جلوگر میسازد. زنی که جرأت نمی کند عشق خود را به زبان بیاورد زنی که عظمت معشوق او را له و لبرده کرد و باز هم می و تماشا کننده باید از این نگاه شور او را دریابد. گاهی برعکس میگفتم نه صاحب ها دارد مردی را به دام میاندازد تومه خود را در لحظه بعد خواهد رو بود و این زن با نیشخندی که از چشهایش تراوش میکند از حال زار قربانیش کیف حیوانی میبرد من نفهمیده بودم که چشما از آن یک زن دلباخته عفیفی است یا زن هوس باز هرجائی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 برای تماشای آن مجبور شود رویش را برگرداند چند دقیقه بیشتر طول نکشید در باز شده زن به اتاق آمد همین که چشمشو پرد افتاد تعجب کرد گویی خوشگش زد اما این شگفتی لحظه بیش طول نکشید حتی قدمش هم سوس نشد در را بس و یک راست رفت و سر جای خودش نشست چیزی نگفت هیچ به روی خودش نیاورد که تابلو را بدون اجازه او از محفظهش درآوردم. من به تابلو می نگریستم و زن ناشناس به من نگاه می کرد. شاید میخواست بفهمد که من حالا پس از اینکه نیمی از زندگی او را به استاد میدانم درباره این تصویر چه قضاوتی خواهم کرد. چند دقیقه سکوت برقرار بود. آخر من شروع کردم و پرسیدم آمدید به تهران رفتید و استاد را پیدا کردید؟ جوابی نداد از جعبه خاتمی که روی میز بود سیگاری در آورد آن را سر چوب سیگار بلندی که در همان جعبه بود زد که برید کشید و دود از لبهای لطیفش به هوا فرستاد و گفت نه به این آسانی که شما تصور میکنید اسم من فرانگیز نیست فرنگیست اسم است. که خدا داد به من داد و او مرا همیشه فقط به این اسم خواند قرار شد در نامه‌ای که به او نویسد، مرا به این اسم بخواند تا اگر نامه را سانسور کردند کسی مرا نشناسد برای نام نویسی رمزی داشتند و اسامی اشخاص را همیشه عوض می کردند. در پاریس قرار گذاشتیم که روز جمعه دهم ده خرداد من دم در سینما منتظرش باشم به او نوشته بود که لباس سفیدی بر تن خواهم داشت و کیف سرخ رنگ در دست خواهم داشت بنابود که سر ساعت هفت همین که او را دیدم دو بیلیت بخرم و دو بیلیت را در دست راست نگه دارم و بیان بی که به او چیزی بگویم وارد سینما شوم و او هم دنبال من بیاد و در تاریکی با هم گفتگو کنیم اینان این منظر را یادم هست منطقه این را خداداد فراموش کرده بود که در خود سینما سینماها در هوای آزاد دیرتر شروع می شود و اتفاقا آن روز جمعیت زیادی در خیابان ازدهام کرده بود و من نتوانستم دستورهای او را عینا انجام دهم چند دقیقه پس از ساعت هفت هنوز نتوانستم او را پیدا کنم و در نتیجه قبل از آنکه ما به سینما برویم با هم صحبت کردیم بدین طریق من پس از برگشت از اروپا با او روبرو شدم اما چقدر گفتنش آسان است ببینید وض را در نظر بیاورید آن وقت خودتان تصورش را بکنید که با چه هیجان و با چه توقعاتی من خودم را آماده برای این نخستین ملاقات کرده بودم در آن ایام زنی بودم فهمیده پنج سال زندگی بیبند و بار در اروپا پشت سر داشتم بیشتر شهرهای اروپا را دیده بودم و با آدمهای عجیب و غریب روبرو شده بودم همه طالب من بودند اما در این حال زنی بودم تنها یگانه